خالق ایده های نو از ایده های کهنه هنگام یادگیری مفهومی نو یا کسب مهارت فکر کنید چه مسادی انواع و هایی ممکن است تفکر به این موضوع طبیعی است که هنگام حل مسئله به موفقیت های خود خورسند باشیم گویا به فصل آخر داستان بزرگ رسیدیم در واقع بستر موفقیت هرگز به آرامش رضایت بخش منتهی نمی شود و ایدههایی یا راهحل نو باید همواره به منزله سرآغاز باشد. دانش آموزان موثر و نوآوران خلاق به طور منظم به دنبال کشف پیامدهای های ناخواسته درسها یا ایده های نو بودند. RHچ بینگ می گوید زمان کار کردن روی مسئله پس از حل کردن آن است. مثال روشنگر توماس ادیسون در اختراع محصولی پس از محصول دیگر و بهره برداری از این شعار که فایده ی هر ایده نو فراتر از قصد اصلی آن است بسیار موفق بود زیرا نوشته بود از آنجایی آغاز می‌کنم که آخرین نفر متوقف شده است او به طور انگیزی افسوده است، بسیاری از شکست‌های زندگی متعلق به کسانی است که نمی‌دانستند هنگام دست شستن از کار چه اندازه به موفقیت نزدیک بودند. لامپ مشکل بسیار مهمی را حل کرد و به ما روشنایی دائمی داد تا بتوانیم کارهایی بکنیم که پیشتر نیازمند روشنی روز بود. اما راه حل فوق فقط نوک کوچک کوه یخ عظیم است. پافشاری بر ایده لامپ به عرصه های دیگر چون سینما، تلویزیون، رایانه، دستگاه چاپ، فیبر نوری، فرایندهای پزشکی، تخت حمام آفتاب و حتی منابع گرمایی بوفه ها متعی شد که در غیر این صورت پیشبینی ناپذیر بودند. پیش از اختراع لامپ مردم از پیشرفت‌های شگفت انگیز و گوناگون ناشی از آن تصوری نداشتند، اما هر ایده ای، گرچه شاید راه حل مسئله جداگانه به نظر بیاید اما در واقع صرفا نوک کوچک کوه یخ عظیم است. پابلو پیکاسو میگوید من با ایده ای آغاز می کنم و سپس ایده به چیز دیگری تبدیل می شود. ب مثلا بیشتر به تعداد گامهای اصلاحی فکر کنید که با تلفن الکساندر گراهام بل آغاز شد. چه بسا در فیلم های قدیمی تلفن شمارهگیر را روی میز کنار در ورودی امارت اعیانی دیده باشید. بعداً با تلفن مجهز به شماره داخلی این امکان فراهم شد که تلفن در اتاقهای متفاوت قرار داده شود. سیستم تلفن تون سپس تلفن بیسیم پس از آن تلفن همراه بزرگ آجوری شکل و تلفن همراه جیبی دوربیندار و سرانجام تلفن هوشمند با دسترسی به اینترنت و ویدئو و یقینا کسی تصور نمی کند آیفون انتهای خط باشد هر یک از این گام ها مستلزم اندیشیدن به نقطه اوج کنونی پیشرفت ایده و طرح این سوال است که چگونه میتوان راه حل کنونی را بهتر کرد تا ای که به شکل فعلی حل میشود بهتر حل شود. فقط ایده های فعلی حوزه های فناوری نیستند که توسعه میابند و اصلاح میشوند. به پیشرفت های هنری یا ایده های فلسفی، اجتماعی و مذهبی بنگرید شاید به نظر شما پیشرفت های نو در آن عرصه ها همواره به معنای اصلاح و بهبود نباشد اما حتما قبول دارید که ایده های در حال تحول تمام حوزهها را دگرگون کردند امروزه هیچ مذهبی مانند کلیسای کاتولیک در سال 1633 میلادی گالیله را به دلیل اعتقاد او به چرخش زمین به دور خورشید زندانی نمی قرها قرنها پیش کسی حتی رویای تنوع هنری امروز را در سر نمی پروراند. سینما، ادبیات و بیان فرهنگی همه با بهترین های هر نسل و گذر به فراسوی نسل بعد توسعه می‌یابد. رالف والدو امرسون می‌گوید: علف هرگز گیاهی است که حسن آن تا کنون کشف نشده است." روش برانگیختن تفکر مؤثر، ایده‌ها را بپرورانید. ایده خوب را از هر عرصه دلخواه، مانند کار، جامعه یا زندگی شخصی انتخاب کنید. لزومی ندارد به ایده اصیل خود فکر کنید. حال با ایده درگیر شوید و آن را بپرورانید. نکته کلیدی پرسش از قابلیت شرح و بست ایده نیست. زیرا این قابلیت وجود دارد. چالش شما یافتن آنهاست. مثال، بار اول، بار دوم، در سال 1955، پیر اومیدیار بر اثرگزاری مزایده و نقش مثبت آن در زمان میاندیشید. او میخواست بداند چگونه میتواند روش فروش خود را به میلیونها پیشنهاد دهنده توسعه بدهد. او به سراغ اینترنت رفت و به این ترتیب ایبی متولد شد. بهترین میتواند بهتر شود اما که فهم ما به رغم مرحله تحول آن می تواند از وضعیت فعلیش تر و قنیتر شود بنا به چشمانداز مهم تفکر موفق نیز بهترین می تواند بهتر شود در واقع شروع از بهترین اکنون غالبا جایگاه آرمانی چشم ترقیهای بزرگ است اگر فکر می کنیم, موفقیت پایان راه است خود را محدود کرده ایم. گاهی دستیابی به بالاترین سطح کمال فعلی چنان دشوار یا چنان رضایت بخش است که نمی توانیم ارتفاعات بیشتر را تصور کنیم. راه حل سوال دشوار غالبا از تمرکز سخت و دشوار روی موضوع به دست میآید. با فعالیت سنگر به سنگر درباره موضوع طبعاً احساس سخر نوردی را پیدا می کنید که پس از جان کندن طاقت فرسا به قله می رسد. شما رسیدید. احساس می کنید به زحمت روی تکیه گاه بی سبات و خاطرات شما مملو از جزئیات و کامیابی های سعود است. اما تازه واردی که را نقطه عزیمت خود می‌داند دیدگاه متفاوتی دارد. او زحمت نکشیده و تجربه دردسرها، سرها، شکستها و گامهای کوچک را نداشته است. شخص جوان یا تازه وارد به یک رشته موضوع را در شرایط حل شده به شکلی که هست مشاهده می کند. نوزادان امروز به دنیایی مبلوع از رایانه، اینترنت، تلفن هوشمند، پیامک، هواپیمای جت و صدها شبکه تلویزیونی کابلی وارد شوند. کودکان با شنیدن ماجرای روزگاری که تلفن با سیم به دیوار وصل میشد، با دنیایی بیگانه، عجیب و قدیمی آشنا میشوند. کودکان یا تازه واردان از جایگاه فعلی خود آغاز می کنند و بدون فشار یا جانبداری تاریخ پیش میروند. بنابراین یکی از چالش های پیش روی همه ما مشاهده دنیا به شکل کنونی آن با نگاهی دیگر است. آشنایی با تاریخ یقیناً مفید است. اما نباید راه حل های کنونی را نقاط اوج بدانیم. پیشرفت را باید به منزله صعود به قله مرتفعتر از شیب کمتر تلقی کنیم. اولز، بنیانگذار اولدز موبیل نمی توانست کالسکه های بی اسب خود را با سرعت بالا تولید کند. ایده او در سال 1991 افزایش سرعت فرایند تولید بود. به جای ساختن هر بار یک اتومبیل، خط تولید راه انداخت. شتاب تولید بیسابقه بود. از 425 اتومبیل در 1901 تا تعداد شگفت انگیز 2500 اتومبیل در سال بعد. رقبای دیگر از این حجم چشمگیر ترسیده بودند. اما هنری فورد شجاعانه پرسید: «آیا می توانیم از این بهتر عمل کنیم؟ او در واقع با افزودن تسمه نقاله به خط تولید ایده هوشمندانه را بهتر کرد. در نتیجه تولید فورد افزایش یافت. او به جای صرف زمان قبلی یک روز برای تولید مدل تی آهنگ تولید را به یک اتومبیل در هر 90 دقیقه افزایش داد. نتیجه اخلاقی ماجرا پیشرفت خوب غالبا پیاماور پیشرفت بزرگ است این امر در مورد یادگیری مفاهیم نو و اندازه دشوار یا تسلط بر مهارت در سطوح بالا نیز صادق است برای تسلط نهایی بر یک ایده یا مهارت باید مبارزه کنید چه بسا چنان به سختی برای رسیدن به دوردست زحمت کشیده باشید که گمان کنید دیگر از این بیشتر نمیتوان رفت یا احساس خستگی مفرد کنید اما پس از رسیدن به یکی از مراتب پیشرفت باید دوباره از آنجا آغاز کنید. آنجا به منزله سکوی است که باید از آن فراتر بروید. نقطه آغاز شما می تواند مدرک بالا، دستاورد حرفه‌ای یا بینش عمیق باشد. جویای آن باشید. روش برانگیختن تفکر مؤثر به محض دستیابی برای بهبود آن بکوشید. مقاله یا راه حل مسئله را انتخاب و آن را به شکل متفاوت و بهتر ارائه کنید فرض کنید در کار شما اشتباه، از قلم افتادگی یا فرصت از دست رفتهای وجود دارد این ویژگی همواره وجود دارد، حال آن را پیدا کنید باز هم نمونه دیگری از بینش حاصل از شکست این فعالیت از آنچه ابتدا به نظر می آید است ما تحت تأثیر دانسته های سابق خود به محدودیت دچار می شویم، به ویژه به دلیل آگاهی از سودمندی آنها، اما اجتناب از پیشتاوری می تواند به جوابهای نو و آن نیز خود به بینش های تازه و جوابهای مؤثرتر منتهی شود. کسانی که این تکرار تکاملی را به تمرین دائمی و استاندارد خود بدل کنند، در آموزش و زندگی خود از کسانی که یک جواب را نقطه پایان می‌دانند، موفق ترند. مثال شخص بهتر روزا تصمیم گرفت این تمرین را در مورد خود اجرا کند. او بهترین امتیازات خود را در نظر گرفت و فکر کرد چگونه می آنها را بهتر کند. او ویولون می نوازد و سلفش فوقلادهی دارد. بنابراین به دنبال ارتقای مهارت خود رفت. او با استفاده از الگوهای توری پیچیده شالگردنهای زیبا میبافد به دنبال ارتقاء استعداد خود در این زمینه رفت. او سرانجام تصمیم گرفت. علاقه خود به والیبال را دنبال و قابلیت های گذرا اما توانمند خود را تقویت کند. تقویت توانمندی ها می تواند به نتایج غیر منتظر منتعی شود و در کمال شگفتی ها را جبران کند. در این مورد، ارتقاء قابلیت‌های گذرای او برقراری ارتباط مؤثرتر با اعضای همتیمیش بود که او را به بهبود مهارت‌های ارتباطی سابقا ضعیفش در داخل و خارج رشته مورد نظر سوق داد. تقویت نقاط قوت جنبه ای از تفکر و یادگیری موفق است که هر کس از جمله روزا را به افقهای تازه می‌رساند. عمل کردن انسانها فاصله دوردست را نمی بینند. میدان دید اقلانی ما به چند گام دورتر از اینجا و اکنون خلاصه می شود باید اقرار کنیم تا هر جا را که ببینیم دید ما صرفا تا است که فراسوی آن باز هم دنیایی بزرگ آشکار می شود چگونه می توانیم مقصد خود در مسیر ایده های نکاوش کنیم بپرسید مرحله بعد چیست درباره یه شرط اگر این آنگاه آن کاوش کنید نتایج فرضی ایده را دنبال کنید و هنگام دستیابی به مرحله بعد آن را به منزله واقعیت نو تثبیت کنید و پس از آن فکر کنید حالا چه می‌شود با این کار از اندیشیدن به مطلب در مقام دانش‌آموز به اندیشیدن به موضوعات به منزله عملگرا گذر می‌کنید تفکر شما به روش متفاوت صورت می گیرد البته کل ماجرا نیز همین است بی تردید هر سلسله از پیامدها در واقع به زمین تازه پرباری منتهی نمی شود یا از آن نمی گذرد اما کاوش در پیامدها به اندازه چنگام بیشتر ارزش فراوانی دارد تعقیب جریان می تواند برخی از خطاها در طرحهای بظاهر بیعه و نقص را برملا کند مثلا فرض کنید میخواهید با افزایش ایمنی سفر هوایی را ارتقا دهید. پیگیری پیامدهای محتمل ارتقای ایمنی در خطوط هوایی میتواند به نتیجه شگفتانگیزی منتهی شود. ارتقای ایمنی خطوط هوایی در واقع می‌تواند موجب تلفات کلی بیشتر شود. زیرا اگر ایمنی بیشتر به معنای افزایش هزینه پرواز باشد، اده بیشتری ملزم به رانندگی میشوند که در کل شیوه مهلکتری برای سفر به شمار میآید. برای تجسم آینده به گذشته بنگرید و به فضای ذهنی گذشته بروید. مثلا به این موضوع فکر کنید که سی سال گذشته تجسم اینترنت چقدر دشوار بود. از خود بپرسید چه مطلب یا ایدهای در آینده از نگاه امروز قابل تصور نیست چونان که شبکه‌ی جهانی وب در 1980 چن بود مثلا میتوانیم تصور کنیم شرکتی به نام گوگل گلسز اینترنت را در عینک شما تعبیه میکند چونان که واسطه آن تنها با اندیشه ها تکمیل میشود شاید این تصور به گمان شما کاملا تخیلی به نظر بیاید اما در دهه 1970 تصور تلفن هوشمند یا بدون سیم رابط نیز بی اندازه غیر ممکن می نمود. که در گذشته به داستان علمی تخیلی شباهت داشت. یک گام به گذشته فکر کنید تا یک گام به آینده را تجسم کنید. هیچ کاری از مشاهده قضاوت های احمقانه گذشته یا قضاوت های احمقانه افراد دیگر ساده تر نیست. اما کاری سختتر از مشاهده قضاوت خود ما هم نیست. با تعقیب مسیر جریان ایده های آتی می توانیم مسائل نهان امروز را تشخیص بدهیم. روش برانگیختن تفکر معصر بپرسید آنها به چه فکر می کنند؟ کدام باورها، عادات فرهنگی، دیدگاه ها یا کنش های پذیرفته شده امروزی به نظر نوه های ما احمقانه به نظر خواهد آمد؟ برخی از نمونه های احتمالی چیست؟ قرها پیش، بردداری از نگاه انسانهای محترم، عملی طبیعی و اخلاقی بود. کدام اعمال خوب امروز در آینده به منزلی اعمال شرماور نکوهش خواهد شد؟ مثال، نمره زعیف همیشگی امروز نقل لطیفه های قومی و نژادی کار پسندیده‌ای نیست. این لطیفه ها احانت آمیز و باستاب قضاوت ها به حساب می‌آیند. ما اکنون در مورد گروه هایی که چه بسا به نوعی رنجیده و تحقیر شوند حساس تریم. این دیدگاه نزد بسیاری از افراد بافرهنگ شناخته شده است. حال بیایید نظام آموزشی فعلی خود را بررسی کنیم. هر ترم در هر مدرسه کشور کارنامه ها تعداد گسترده ای از دانش آموزان را به منزله افراد فروتر معرفی می کنند. آنها به شکل فردی جدا می شوند و به آنها گفته می شود تو چندان باهوش نیستی، تو چندان سختکوش نبودی، تو مناسب نیستی، تو فروتری. ما در قالب هنجار فرهنگی مراقبیم با بدگویی درباره ریشه های قومی یا اعمال مذهبی احساسات آنها را جریهدار نکنیم. اما به نظرمان اشکالی ندارد که از طریق نمره های ضعیف فروتر بودن آنها را به اطلاعشان برسانیم. راه دیگری نیز وجود دارد چه بسا در آینده نمره ضعیف به کلی ثبت نشود و تنها دانش و مهارت واقعی دانش آموز در کارنامه او لحاظ شود آیا خوب است این واقعیت را که دانش آموز در درس خاصی موفق نبوده را در کارنامه دائمی او ثبت کنیم؟ چه بسا در آینده دیگر دانش را به دلیل عدم فهم در دفعه اول تنبیه نکنیم؟ شاید ارائه گزارش نمرگ بعد دانش آموز را کاری غیر اخلاقی ندانید و ما نویسندگان نیز بر این نظر نیستیم که این کار لزوما بعدها به شکل دیگر تعبیر می شود اما هر نمونه از کاری که امروز مقبول است و در آینده عملی غیر اخلاقی تلقی می شود باید به منزله عادتی باشد که اکنون از نگاه ما به کلی مناسب است هنجار فرهنگی امروز در آینده از زاویه متفاوتی مشاهده و غیر قابل قبول. تلقی می شود. نتیجه اخلاقی همه ما پیش‌داوری می‌کنیم و تلقی نگرش‌های فرهنگی ما به منزله دیدگاه‌های در حال تحول و می‌تواند به ما در کشف پیش‌داوری‌ها کمک کند. برخی از باورهای راسخ ما، بر ایده‌های موجه مبتنی بر خانده‌ها و شنیده‌هایمان، استوار است. اما بسیاری از اعتقادات محکم و استوار ما بر واقعیت یا اثبات ملموس و تاییدپذیر مبتنی نیست. امکان اجتناب از پیش‌داوری وجود ندارد. زیرا از طریق تربیت ارزشها جامعه و اجتماع ما القا می شود. اولین اقدام واقعی همه ما پذیرش این واقعیت بدون خجالت و ناراحتی است که ما همه می میکنیم. این فهم خداگاهانه درباره پیش‌داوری پنهان در هنگام پیشروی ما گام مهمی به شمار میآید. اندیشه های نهایی در دست ساخت هنجار است به گمان بسیاری از مردم وضعیت آرمانی دنیا به این صورت است که همه چیز تمام و کامل باشد در واقع با قدری حساب معلوم می شود این دیدگاه نادرست است مثلا در شهر نیویورک حدودا دویست آسمان خراش وجود دارد عمر ساختمان پیش از نیاز به تعمیرات اساسی یا تخریب تقریبا چهل سال است شاید چهار سال طول بکشد تا کارکنان ساخت و ساز با کار بیوقفه یک آسمانخراش را نوسازی کنند در نتیجه به طور متوسط سالیانه تعمیرات اساسی پنج آسمان خراش یعنی دویست تقسیم بر چهل آغاز می شود و احتمالا سالیانه به طور متوسط بیست آسمان خراش یعنی چهار زبدر پنج در شهر نیویورک در حال احداث است صرف نظر از آشوب و جنجالی که شهر به آن مشهور است بنا به دیدگاه واقع، تر و سالمتر ساخت و ساز همواره در حال انجام شدن است هر کاری در حال پیشروی است در مقام مقایسه زندگی شما جنبه های متعدد دارد خانواده دوستان تعلیم و تربیت موقعیت حرفه ای ها و غیره هر یک از این اجزا در حال دگرگونی مداوم است بنابراین انتظار شما نباید چنان باشد که وضعیت عادی امور در حالت تمام و کمال بوده و همه چیز به خوبی عمل کند در واقعیت وضعیت عادی چنان است که برخی از جنبه‌های زندگی و یادگیری مسئله ساز می‌شود و نیازمند توجه است واقعیت را پذیرا شوید و بکوشید های ارتقا و رشد را تشخیص دهید در انتظار تغییر باشید و آن را بپذیرید و از واقعیت و چشمانداز جریان ایدهها برای فهم دنیا و خلق دنیای نوع آینده کمک بگیرید. رؤیای درست چه بسا درباره خلق ایدهی ای که مسائل بسیاری را حل کند و به شهرت و دارایی منتحی شود رؤیاورزی کنید. اما رؤیای بهتر این است که خود را ایستاده بر فراز قله و در حال صعود با گامهای کوچک یکی پس از دیگری تصور کنید. عادت متواضعانه ی تفکر مؤثر به شما کمک می کند تا رویای آنچه را به ذهن خود راه نمی دهید تحقق بخشد.